حدیث 4 فرمودید رسول الله صلی الله علیه و سلام اوفی بناذره من نذرت ایفاکم انسان اگر نذری کرد عهد بر خودش گذاشت بود به عهدش ایفا بکنه و چند تا حدیث داریم این فرمودید رسول الله صلی الله علیه و سلام چند جا گفته یکیشون حدیث عبدالله بن عمر حجر صحیح بخاری که میگوید که پدرم عمر بن خطاب و من نزد رسول الله صلی الله علیه و سلام سوالی داشتم که بفرموید من تو نذرتو فی الجاهلیه اعتكف ليله فی المسجد الحرام من ناس کردم کده در جاهلیت یعنی قبل از اسلام که یک شب در مسجد الحرام اعتکاف بکنم بعد رسول الله ص الله علیه و سلام بیش فأوفي بالنظرك بالنظرة ايفا بكم این ایک جاب از جملة حدیث عمرو بنو شعب داریم اسفدرش اسفدر بزرگش زنی اومد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرموت كمان ناس کرد ان نظرت وان اضرب على رأسیك بالدفی ناس کرد ام که دائره بزنم دف زنم اونم بحین ورود الرسول الله بمدينة فدر الله صلى الله عليه وسلم بهش مفرموت اوفي من نذركي. و بعد میگه که اون نز کردم در فراننجاب زب بکنم براساس سوال میکنه که اونجابطی هست موردی هست و که پرسیده میشه گفت که نه و در اس فرمودن او فی این دو تا نزدیکی این داشت و ما گفت که ایفا بکن. حدیث ثابت ابن نزاحاق داریم که مردی در زمان اساس سازنم نز کرد که در بوانه ض بکنه اننیین حراه بلا ب یعنی در با منطقه چطوری را ذبح بکنه قربانی بکنه بعد رسول الله صلی الله هل و آله کنه هل کنا فیها وثنا من وثن الجاهلیه یعبدها یا بوتی و... معبودی اونجا به غیر از, از خدا پرستیده میشده فرمود نه قال حل که نه فی عید من عیده هم آیا عید از عیدی محلت جمعه از مشرکین هست فرمودن خیر نکنیم حدیث رسول الله بر همه جا مسئله تطبیق پیدا میکنه آلا چه میخواه جشن مولود باشه چه هر مراسمی از مراسم شادی های مشرکین بخواد باشه کفار، نصارا، کریسمس، غیر، نوروس، شبیه الدا همه اینها حرامه چون اینجا این شخص نز کرده به ایفا به نذرم واجبه به نظر ام امره ولی که اگر محل تجمع مشترکینه عید از عیاد مشترکینه اونجا هست که بر ما حرام میشه وقتی که این زن میگه که نعید از عیاد مشترکین نیست بعد میگه که پس و محل عبادت اونها نیست پس میگه اوفه به نظرت بهش میگه که به نذرت ایفا بکن فانه فا لا وفاء للنذر فی معصیت الله در معصیت خدا ایفا یعنی اگر تو این کارو بکنین این عبادت رو در آنجا انجام بدی میشه معزیت الله و لفی ملعی ملکو بنادام این همچنان نمیتونه نز ببنده در چیزی که مالکش نیست مثلا من نز میکنم که مثلا یه چیزی که در ملکم نیست مثلا من در راه خدا بدمش من گفتم حالا به طور خلاصی این حادیثات وضعی میدم اینم حدیث چهارم